وجعل كبئس سر ساعت وجعل فولا منزي سلاست كنمع مسجلا وجعل كبئس سر چون جمله قبلش جمله خبري اجعل با واقع استینافیه اجعال فل و زمیر انتر بایر ساعه مفعول اول اجعل ساعه کبعصر کبعصر متعلق با عامل مقدر مفعول سانی اصلشون مبتلا خبر بودن بوده ساعه کبعصر سر. اجعال سرش در برده یعنی قرار بده ساعه را هماننده ایسا اجعل فعل و فاعل ساعه مفعول اول کبیسه مفعول سانی وجعل وابا وابا آتفه اجعل فعل و زمیر فاعلش از که به جای قبلی فعله مفعول اول یعنی وزن فعله قرار بده وزن فعله را منزی زی انده منزی سلاستن حال از برای فعول است چون اون علمه دیگه برای وزن فعوله منزی سلاستن متعلق است به عامل مقدر حال کن امه مفعول سانی یعنی متعلق به آمل مقدر مفعول سانی قرار بده فعوله را در حالی که از سلاسی مجرد است منزی سلاستن. یعنی من فعلن زی سلاست اخروفن تنوین سالاساتن آغاز از مزافون رایه اخروف و زی هم صفت یک موصوف مقدر یعنی من فعلن زی سالاساتن در حالی که مشتق از فعل در حالی که می باشد از فعل صورتیه مجرد کن اینو قرارش بده مثل نیمه مسجلان مستجلن حال یعنی مطلقان حال از برای مفعول اول یعنی فعوله یا میتونیم بگیم بوده جعلن متجلن یعنی قرار بده قرار دادنی مطلق مثل اسمون یعین المسمه مطلقن یعنی تعینن مطلقا که بشه مفعولون مطلق یعنی استفاده برای مفعول مطلقه حال بهتر است دیگه نیازه به تغییر هم نداره چی گفت این دو تا بیت میگه ماننده به هستش ساعت یعنی اونم برای زم کار میره احکام همون به رو هم داره فایلش یکی از اون 4 شکله مخصوص به مرض زم دارد مخصوص به زنبش یا مبتدا معخره یا خبر مبتدا محذوفه همه احکامی که در مورد به اثر اونیم در مورد ساعه هم وزن فعولت و قرار بده وزن فعوله رو در حالی که از فعل ثلاثی مجرد هم باشه یعنی مثلا مثلا بگیم زر وند بگیم فه بگیم کبره ها در حالی که از فعل ثلاثی مجرد هستش قرارش بده مثل نعمت درست قرارش بده کنهما مثل نعمه برای مدح و زن بکاره. مست جلابه طور مطلق یعنی هیچ بندی هم نداره از هر فعلی شما میتونید وزن فعوله بسازید به شرط اینکه قابل تفاظل باشه میتونید وزن فعوله بسازید و دلالت بر بگید مطموع زم کسی بکنید بیاییت آیی وجعل کبع قرار بده مانند به سفی جمعی ما تقدمه در همه ی چه که گذشت قرار بده چیو؟ سا نه و سا ام مثلا الگوم الان میگیم سا افد زمیر چیه؟ فایلش مثلا تمیز و منصوب و اون زمین هم برمیگرده به همین سا هم مثلا الغوم و به زم میشه الگزینه صفت الغوم مثل یعنی هیئت، شعن موقعیت مثل هم که مثله به یحمل و اصفار یعنی هیئت اینها موقعیت اینها مثل موقعیت است که کتابهای نافعی بردوش داره و داره میبره یهود رو اینجا میگه سا مثلا یعنی بعد موقعیت و قیافه و هیئتی دارند الگوم یعنی بعد قیافه است قیافه این قوم دیگه شعن این قوم لذا الگوم ها اگر میگه مخصوص به زم در واقع به اعتبار مضاف مقدره اصلش بوده سا مثلا مسل القوم الذين دیگه نه چه بعد هیعتی است هیئته کسانی که ها این شکلا کافر شدن حالا سا مثلا رو میتونیم بگیم چی خبر مقدم ال رو بگیم به اعتبار مضافش مبتده مؤخر مثل جاهر اب بود یعنی مثلا القوم و میتونیم هم القوم رو بگید خبر یک مفتدای واجب هست بگیرید. سا مثلا الگوم و و سا رجل و زیدون فایل شده معرفه به الفلام سا ار قلام و رجل قلام و زیدون فایلش بدون الفلام اما اضافه شده به چی به چیزی که دارای میتونم میتونن بگه سا ابن اختل قومه زیدون زهیرون اون شکلش هم مثاله بعدیش باز همون دوتا ترکیب در زید وجود داره و اگر سا الرجل میبینی سا الرجل خبر مقدمه رابط میخواد رابطش عمومه الرجله که الفلام الفلامه جنس این به احساس هیچ فرقی نداره. میگه ولکه انتقول میگه جایز است برای تو انتقوله این اینکه این اشکال رو به مصنف بکنی ولکه انتقوله حلی هی همه سلوها اختلاف فی فعیلیتها میگه در بیسه اختلاف در فعلیت دارم خوندیم دیگه یادتون هست یا نیست آه. در بیسه اختلاف در فعلیتش داشتن ادهی میگفتن بیسه چیه؟ اسمه آیا در ساعه همین اختلاف هست؟ خیر، در ساعه این اختلاف رو ندارن. ساعه رو فعل میدونن. میگه این اشکال رو میتونید به مصنف بکنید که تو که گفتی وجعل کبه اسس ساعه قرار بده ماننده به اسس رو. درست شد؟ پس بناوری در اختلاف فعلیت هم باید مثل هم باشه. میگه اینو میتونی اشکال کنی به مصنف. در صورت که در ساعه این اختلاف رو ندارن. این اشکال به مصنف ما وارد نیست اولا مصنف ما اعتقاد بر فعلیتش بگید داشت نه اعتقاد بر اختلافش چون گفتش چی؟ فعلان غیر و متصرفین نعمه و بهزه درسته نیست رافعان اسمینه اینه گفت فعلن. حالا میگه هم همچیه مثل بهزه است اختلاف در فعیلیتش رو بگید شما از نظر ایشون ساعه و بیس مثل هم است. در جمعه وجود در فعلیت مثل هم در زم مثل هم در داشتن فائل مثل هم در داشتن مخصوص به زم مثل هم در اعرابات این یک و ثانیه یک چیز رو اگر به یک چیز دیگر تشبیح می کنن در جمعی وجود تشبیح نمیکنن یعنی اگر من گفتم زید مثل شیر است و چه ای رو مورد نظرمه. نه همه یه وجود که یعنی زیدم مثل شیر دوم دارد دهان بد دارد شکم کوچک دارد غذا ذخیره نمی کند یعنی اینا مورد نظر نیست بلکه زید شیر است یعنی در جند. حالا میگه بلکه انتقولولم حیه ای هم،, هم مثل ها آیا این بحث هم این هم مثل بحث است در ارتباط با اختلاف در فعیلیتش که تو گفتی وجعال کبیست ساها سا. که ما گفتیم اون در اختلاف نه نگفت اون گفتی فعلان غیر متصرفه این نعمه بر نیست وجعال فعوله و قرار بده وزن فعوله رو بزن بل این وزن فعوله ای که المسوقه صفت فعوله است وَجْعَلْ فَعُولَ اَن مَسُوقَ مِنْ زِي سَلَاسَ تَحْرُفِن یعنی من فعل مِنْ زِي سَلَاسَ تَحْرُفِن قرارش بده کنه قرارش بده مثل وزن اخعال مدهو زن یعنی مثل نعمت که برای مدهو زن به کار میره شما وزن فعول رن به کار رن مست جلا مست جلا یعنی مطلقا مثال میزنه نهو عدو مر جولو زیدون به جور ترکیف میکنیم علومه الرجل زیدون رو میگیم علومه فیل الرجل و فاعلش. این جمله خبر مقدم زید محتده امومه الرجل هم گابه یا زید خبر محتده های واجبه هم فایلش الان معرفه میتونست بگه علومه رجلن بگو زیدون میتونست بگه علومه و رجله بگو زیدون میدونست بگه علومه ابن اختل قومه زیدون مثل قبلیسته و کبورت کلمتن تخرج و من افاهه این های مثل چی میمونه مثل به سما ان انفصافه الان میگیم کبورت به زمیر هیه بگو فائلش کلمتن تمیز که برمیگرده به کلمه عود زمیر از به مرجعه متنقه. یعنی که علی کلمت و کلمت تخرج و زمیر زمیر کلمتن فایلش و رابط جمله صفت به محصول من افباه متعلق به تخرج اش در محل نصف صفت کیه؟ صفت کلمت هست و صده مصده چی کرده؟ مخصوصش رو کرده. دیگه نیاز به مخصوص نیست کبرت برد کلمتن تخرجومن افاههن یعنی خیلی چه گندهست این کلمهی ای که از دهانه بگیر اینها خارج میشه چه حرف گنده ای از دهانه اینها خارج میشه که برد کلمتا تخ رجومن افاقی درست مثل ترکیب به سماهش درابهی امفاسه و فی فائلهی الوجهان ال آتیان فی فائل حبه میگه در فائل این کلمه در فائل این فعوله اون دو وجهی که در فائل حبه میاد در فائل حبه هست در این هم جاریست میتونه فائل این به اون دو شکلی که فائل حبه میاد هم بیاد حالا میرسیم به فائل حبه برمیگردیم اینجا یک نظارهی داریم فی فائلهی الوچهان الاطیان فی فائل حبه پس در فائل این وزن فعوله اون دوتا وچی که تو فائل حبه هم گفته میشه در این هست این دوتا رو فیلن ما ترکیب کردیم درست شد؟ یکیش مثل نیمر لجل و زیدان بود یکیش مثل به سمایش ترابهی هم هم میگه فائلش میتونه به شکل دوتا فائلی که برای حبه میاد دوبون فاعلی که برای حبه میاد هم بیاد و قولهو مست جلند قول مصنف که گفته مسجلن یعنی چی یعنی مطلقاً چون اسم مفعول از اصل جلل کلامه اصل جلل کلامه یعنی چی یعنی ارسله و ابلغه یعنی کلامو ولش کرد بیان کرد اصل جلل کلامه یعنی ارسله و ابلغه پس مسجل میشه مطلق مسجلن ای مطلقاً میگیم اینو واسه چی گفت میگه با این مطلب اشاره به خلاف قائلن اشاره کرده است با این مسجلن به خلافی که با قائلی دارد قائل چی میگه مگه دیگران چی میگن مگه الا خلاف قائلن بل خلاف قائلی که قائل شده بماذکر قائل شده است به اینکه وزن یعنی ما فعوله رو داریم برای مدح و زم قائل شده به ماذکر یعنی به این که وزن فعله برای زم و مدح بگید میاد وزن ما به اساس قائل به ماذکر شده اما غیر علم و و سمع در غیر علم و جهله و سمع یعنی قائل گفته ما وزن فعوله برای مدح و زم میاریم اما در غیر این ستافه در این ستافر خود وزن خودشون رو برای مدخوزم به کار میبریم یعنی در اینجا به جایی که اون بالا خوندیم الومر رجل و زیدون باید بگیم چی؟ المر رجل و زیدون کبوره نه. باید کبوره خوند اگر مثلا به جای المر بود جه حوله میخونیم چی؟ جهله این قائل گفته قمعه میخونیم سمعه بگید نمیخونیم. یعنی این قائل نظرش بر این شده که وزن فعوله برای بگو مدخوزن می آید اما اگر وزن فعوله علمه و سمع و جهل باشد دیگه به وزن فعوله تبدیل نمی همون وزن کسریه خودش کسری گفته نه مطلقا یعنی در این ستا فعل هم ما تبدیل به زمشون می تا فرق باشه بین ای که دلالت بر زم می کنه و فعلی که دلالت بر زم میکنه. و اشاره بهیلا خلاف قائلن به مازوکرفی غیر علم و جهله و سمع. خب و مثل و نعمه حبزا مانند نعمه هستش حبزا اما الفائل و زا در حالی که فائلش چیه؟ زاست اون میتونست فائلش؟ الفلام داشته باشه مضافه به الفلام باشه مضافه به مضاف به مضافه به الفلام داشته باشه ها؟ میتونستن زمیر باشه این نه این فاعل فاعلش فاقل که هسته و این طورت زممن فقل لا حفظا. اما اگه دلت خواستش زم کنی بگو چی لا حفظا و مثل و نعمه حفظا و وا استینافیه مثل و نعمه خبر مقدم مضاف مضاف خبر مقدم حب و زا مبتده مقدم و زا الفائل و زا خبرش جملات به جای جمله قبل و واب آتفه چی شده؟ افتاده. و واب, واب استینافیه باب و این ترد فر زمیر انتا فائلش زم مفعولش و اگه اراده کردی دلت خواست زم کردن رو فافای جزا قول لاحب بزا بگو لاحب بزا قول فر زمیر انتا فائلش لاحب بزا مفعول قول اینجا به معنای اذکر است چرا؟ به دلیل اینکه ماده قول اگر به معنای حقیقی خودش باشه فائلش یا جمله است یا چیزیه که در تحویل جمله است مثلا قل تو شعرن قل تو شعرن شعری گفتم یعنی چی؟ کلامی گفتم جمله است یا فائلش باید چی باشه؟ خود جمله باشه قل اللهوم لا تفسدوا قال اني عبد الله اینجا چون فاعلش لا حفضا مفرده لذا به معنای چیه ذکر یعنی انت زمان ضمن فظ کر لا اگر اراده زم کردی پس ذکر کن چی رو لا حفضا رو حفضا رو لا برسرش در بیار بگو لا حفضا یعنی چه بعد است مثل اینو قبلا داشتیم ها ای گفتی تو سیوی یک بود. می گفت ال حرف تعریف اولامو فقط ف نمادون عرفا تا قول فیه النماد. قول فیه النماد النماد مفرد بود. گفتم یعنی چی؟ یعنی این عرفا تهو ف فیه یعنی فزگور فیه النماد. و مثل نیمه و معنده نیمه است. بیمعناها و حکمها میگه وقت شبهش اینه هم در معناش هم در حکمش حب بزا کلبه حب بزا. که قولهی مثل قول این شایر یا حب جبل و ریان من جبلن و حب بزا سا کن ریان من کانا یا دو تا ترکیب داره مثل یا لیتنی کن تو محکن. یکیش به معنای حرف ندا باشد و یا قوم باشد و منادا حذف شده یعنی یا قومه یکی دیگه یا حرف تنبیه باشد و اصلا دیگه منادا لازم نداشت به معنای علا علای با همزه یا حب بزا. اول کتاب آی ملا جلال در یا لیتنی کنتم و معکم ادعا کرد که یا قومه بوده و یا بر سر حرف در نیمده تو بلجرل و تنوین و ندابه اینجا میگه یا قومه بوده و یا, یا حرف ندا بر سر فعل در نیمده حب بزا. حب بفعل زا فاندش جبل و ریان مخصوص به مذهب من تمیزه یعنی از جهت کوه بودن میگه ای قور یا آهای چه نیک از کوه ریان از جهت بگو کوه بودن جبل ریان من جبلن. و هذا عطف به جا عبازهای قبلیست با زا ساکن ریان حال است از برای و چه نیک است آن در حالی که ساکن ریان است من کانم من مخصوص کانه فعل زمیر فائلشه مسئله من و حب و زا ساکنر ریانه منکانه ساکنر ریان حال است از برای زا و من مخصوصه حالا مخصوص میتونه مبتدای معقر باشه حب و خبر مقدم میتونه هم نخیر من خبر مبتدای واجبه هست من ساکنر ریان رو حال گرفتم از برای زا و نگفتم مثلا خبر کانه کانه رو تا آمه گرفتم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه که من محصوله دارای چیه؟ صدارت نسبت تلیه خودش اجازه نمیده که خبر محرم شود. شاید مثال رو دیدیم که قولهی و قولهی و یکی هم قوله این شاعر بسم اله و بهی بداینا اینا ولو عبدنا غیرهو شغینا فهب بزا ربن و حب دینن بسم الاله متعلق به بدعیناست بدعینا یعنی بدعنا متعلق به یه بدعناست که این بدعینا داره تفسیرش میکنه ها چون بده اینا مشغول شده به چی؟ به بهی میداره تفسیر میکنه. یعنی بده اینا به اسم اله آغاز کردیم به اسم خدا و بهی بده اینا و فقط به همین اسم خدا هم ما آغاز میکنیم یعنی اون واقع کرده جمله رو به جمله دیگه این دوتا جمله مثل همان لذا تحکید هم رو میکنن مثل کلا صوفت علمون کلا صوفت علمون اینجا با سمت. ولو عبدنا غیرهو شغینا لو عبدنا لو شرطیه و با واطفه لو شرطیه عبدنا فعل و پاهل غیرهو مفهولش این فعل شرط لو جواب شرط فعل ماضی مثبت بوده بهتر بود با لام بیاد در شعر بدون لام آورده در نصرش هم جایزه بدون لام ولی با لام بهتر مثل ولو شعنا لرفعناه و تو کانفیه ما الله اللله لفظه داد ولو عبدنا غیرهو شغینا شغینا یعنی بدبخت می شدیم شغی می شدیم اگر غیر خدا رو عبادت کرده بودیم چیه؟ شقی شده بودیم بدبخت شده بودیم شغینا پس در نتیجه ف حب بزارب بند فهب بزارب بند پس چه خوب است خداوند از جهت رب بودن پروردگار بودن حب بزا ربن حب فعل زا فائل ربن تمیزه برای نسبت حب بزا. و حب دینن حب فعل زمیر فائلش دینن تمیز مخصوص اولی چی شده حذف شده این جمله و حب دینن تاکید جمله حب بزا ربن رو میکنه این همه از نظر معنا یعنی به چه خوبه از خداوند از جهت رفت بودن چه خوب است دین اسلام از جهت دین بودن و حبه دینن میگه وز صحیح میگه قول صحیح اینه انه حبه فعلان مازه قول حق اینه که حب چیه مازیست اصلش حببه بوده و بار رو ساکن کردن در با خوندن چی؟ حب و فائل و له زاد و فائلش هم چیه؟ زاد میگیم مگه قول دیگر هم هست توی این کلمه میگه بله و قیل جملته هو اسمون مبتده اون خبره هو ما بعده قیلی برگشته گفته جمله این کلش حب و حبه بازار ز مرکب شده اما جنبه فعلیت چی شده؟ تقویت پیدا کرده. حبه چی جنبه اسمیه؟ حبه کلش چیه؟ حبزارو هم اسم است و علم است برای مد مبتدا خبرو ما مابعده. خبرش چیه؟ مابعده. مثل قولی که در نهی بر رجل زیدون داشتیم میگفت اسمال محکیان همون در جیل از جملته یعنی کل و همش اسمون مبتده اون است علم برای مد مبتدا خبر هم آباده چرا؟ چرا همه اسم گرفته رو هم میگه لعنه هون لما رو که به محضا چرا زمانی که مرکب شده این حبه بازا شده رو هم حبه زا قل بجانب بر اسمیته قلبه داده شده از جانبه بگید اسمیت یعنی زا جنبش غلبه پیدا کرده فجو الا الکلو اسمم قرار داده شده همه رو همدیگه کلمه, کلمه کل رو بهش الفلام داخل کردن از نظر دستوری غلطه چون کل از اسمای دائمون اضافه است اسمای دائمون اضافه اگر از اضافه قط بشن تندیم میگیرن مثل کلن عدالله حسنا کلن اخزنا به زن بهی. اما الکل الفلام بگیرد و از اضافه قط شد ندارید الکل الالکلو اسم غلط رایجه و قیله قیله دیگری چی گفته قیله المجموع و فعلون گفته فعل با اسم با هم قاتی شدن جنبه فعلیت رو غلبه میدیم المجموع و فعلون یعنی جملتهو فعلون هو ما بعده و اون مخصوصی که بعدش میاد چیه فاعله و این یه فعل است فاعل چرا تقلیبا لجان بر فعل به خاطر قلبه دادن جانبه بگید فعلی اونجا جنبه اسمی رو قلبه میدادیم چون اسم شرافت داشت نسبت به فعل اینطور طور عنوان کردن. اینجا جنبه فعلی رو مقدم میکردیم میدیم و هم میگیم فعلیت داره فعل است و مابد مخصوص فاعل چرا؟ لما تقدمه این مامای مستریه است لما تقدمه یعنی لتقدمه یعنی تقدم الفعله. علل اسم چون مقدم شده در عباره فعل بر اسم اول حبس است بعد چیه؟ زاید. چون فعل مقدم است بر اسم فل مجموع و فعلان مجموعش میشه چی؟ فعل. و این طور زمن لما تقدمه گفتم یعنی چی؟ یعنی لتقدم فعل علل اسم به خاطر تقدم فعل بر اسم فلعباره فل فلعب مجموعه فلان پس مجموعش میشه چی؟ فل یا میتونیم ما رو ما موصوله بگیریم مای موصوله بگیریم بگیم اینطور بوده ای لما تقدم امنت ترکیب به خاطر آنچه که مقدم شد لما تقدم به خاطر آنچه که مرکب شد از ترکیب وقتی مرکب شدن جنبه چی رو تقویت کردیم؟ جنبه فعلیت رو که البته اولی بهتر است چون علت رو هم میکنه. چرا رو ما قلبه دادیم لتقدمی به خاطر مقدم شد و این طورت زمن و اگه اراده زمگردی فض کر پس بگو لا حب بزا بگو لا حب کما قالش شاعر رو همانطور که این شاعر میگه نگاه کنیم الا حب اهل احل الملا غیر انهو ازا زکرت میون فلا حب بزا هیا که اشبار شده هیا بوده شده علا حرف تنبیه است علا حرف تنبیه این حبزا است این شاهد مثال پیش شاهد مثال حبزا حب علا حبزا حب علا حرف تنبیه نجوم و مصطها حبزا حب حبفلزها فاعلش اهل الملا یعنی اهل الفضل ملا یعنی الفاظ الواسه زمین خیلی واسعی رو بهش میگن چی؟ ملا. یعنی منظور اهل ارضه. خوبند اهل این سرزمین. چه خوبند اهل این سرزمین. مده. بذا اهلل ملا. آهای حبذا اهل. غیر عن نهو زمینش اله. استثنا استثنای منقطه. غیر عن الا اینکه. غیر عن غیر از اینکه شأن این است. ازا ذکرت میم مخفف میتونه میتو اسم خودی است علمیت دارد و تأنیث میشه میتو الا اذا کرد میتو مگر زمانی که ذکر بشه چی میه اسم میه بدون گون بیاد فلاح بزا دیرا دیگه اصلا این همه اهل ارض بگید خلاص یعنی اهل این قبیله اهل این سرزمین مردم خوب بیان موقعی که اسمشون میاد دادم کیف میکنه چقدر مردمون خوبی هم تا موقعی که اسم این خانم رو در بین اونها بگید نه بردن اسم این خانم هم که لا بلای اونها میاد اونها میشن چی؟ چقدر آدم های زشت شده حجم کرده اون خانم مگیرا را ازاز زکرت مئی مئیون فائل زکرته فلاحب بزاهی ها فا فای جزا ازا اضافه میشه به فعل شرط منصوب به جزای شرطش عب بزا هیا زا میشه فاعلش هیا میشه مخصوصه به زم حالا یا مبتدا معخر یا خبر مبتدای محصول شما میبینید که لاحب بزا برده برای زم این برش عب است برای مد اون برش لاحب است برای زم درست و و اول زل مخصوصه این کنه و اول زل مخصوصه این کنه لا تعدل بزا فقوه یو ظاهل مسئله خوب کش کنه وابا و عاطفه اول اولا یولی خیلی خوندیم به معلی چی؟ عطا یعطی اعتاعن آتا اتا ایتان یا آتا یؤتی ایتان دو مفعولیه یعنی دادن و اول به قبلا داشتیم تو یک برید نگاه کنید بل ما تلیه اول هل علامه اونجا حسابینو بحث و, و اول زل مخصوصه زا مفعول ثانی برای اوله المخصوصه مفعول اول مفعول اول دو رو چجوری میشه اونی که میگیره ها ها مفعول اوله اونی که گرفته میشه مفعول مفعول سانیست و اول ذا المخصوصه عین کنه به هر شکلی که باشه باشه عین واو با عاطفش افتاده یعنی بوده و عین و اول زل مخصوصه و ایین کنه یعنی اییه شکن کنه اون ای مثل ایین تدعف و لهله مال حسنا بوده ای اسم مزافون ل افتاده تنوین عوض جاش مینشست ای کنه اییه شکن کنه زمین داخل کنه میخوره به مخصوص بنویسید این زیرش اییه شکلن کانال مخصوص این موقع میفهمید که ایه خبر کانه است بوده ایه شکل کانه المخصوص رو میفهمید زمین کانه چیه مخصوص لا تعدل بذار لا تعدل جزای شرطه جزای اینه این کانه المخصوص به هر شکلی که مخصوص باشد لا تعدل بذار زارو تغییرش بده یا نده؟ نده فلا تعدل بزار در جواب شهر لایناهی است فا در جواب شهر, شهر افتاده فا جایزه در جواب شهر چیه؟ بیان ول امرو یا یکل نون محل فیه هوسمون نه و سه و ایه هر هوسمون بوده فخو اسم فلا تعدل بزار لا تعدل فعل زمیر انت فاقلشم واشم در ضرورت شعری افتاده بزا متعلق است به لا تعذ گفت هر جوری که مخصوص باشه شما تغییرش بگید نده فاو یوزاهیل یزاه المسلا تعلیل و مجرد سببیت فای عاطفه نیست هو مبتدا یزاهی فعل ضمیر وائلش اصلا جمله خبره هو میگه زیرا حب آ جاری مجره چی شده بگید مثلا فقوه یزاحی المسلا که گفتم تو باب تعجب هم تغییر نمیدن چون جاری مجره مثله بعضی ها فصل به ظرف و جاری مجره رو اجازه نداده بودن به خاطر که جاری مجره مسل بود تجاری مجره مثل تغییر و اول زا یعنی به دنبال بیاور زا به دنبال بیاور زا را چی رو به دنبال زا بیاوریم؟ المخصوصه هست <تصفيق> یا به دنبال بیاور مخصوص را زا کدومشه؟ مخصوص را مخصوص هو یادتونه نگاه کنید بذارید رو باز تکرار قبل بکنیم یه ذره لغت رو چیز کنیم یعنی چی؟ گفتیم <تصفيق> ولیه هو یعنی واقع بعدو درستو حالا مثلا ولی از زا المخصوصه یانی المخصوص از زا ولی المخصوصو زا یعنی واقع میشه مخصوص بعد از زا حالا ما میخوایم بگیم که واقع کن واقع کن الان اگر ولی رو تبدیل بکنم به اولیتو بگم اولای تو اونی که فائل بوده میشه مفغول اول اونی که مفغول بوده میشه مفغول دوم، میشه اولای تو یعنی اوقع تو المخصوص بعد ازا یا زار بعد المخصوص آه. المخصوص بعد زار پس اولای تو میشه المخصوصه مخبول اولش زا میشه مخبول سانی اونی که کلمه بعد بر سرش در میاد میشه مخبول سانی میشه اولی المخصوصه زا یعنی اوقعتو المخصوصه بعد از زا قرار مخصوص رو بعد از زا برگردید تون بلما تلیه اولیه الالامه این همینه اونجا حسابی براتون بیاک و و اوله و به دنبال بیاور مخصوص را بعد از ذا و از ذا التسلت به حبه زایی که متصل شده به حبه بعد از این زا حال بده المخصوص ها. المخصوص بلمده این کان مخصوص مخصوص به هر شکلی که میخواد باشه باشه مفردن، او موسنن، او مجموعن، مزکرن کنه، او مهننسا فرقی بگید، نداره مخصوص به هر شکلی که میخواد باشه باشه، شما زار و تغییر نداره میگه هبزا زیدون هبزا از زیدان هبزا از زیدون هبزا هندون زا هیچ تغییر نمیکنه. و لا تلوزا لا تدلوزا چی؟ یعنی ان، غیره سیقته ها قدول نکن ازا به این که تغییر بدهی غشت را سیغت تغییر بدی به انتو غیر از سیغت بل بلکه چی؟ بل, بل اعتباها باقیتاً علا حالها ها بزارو بیار همون شکلی که حال اولیش زازاست نه با نگاه کنید هب بزا هندون بزا از زیدان هب ال هندان حبذا از زیدون حبذا الحنداد فرقی نمی‌کنه زا زاست میگیم چرا میگه فهوه یوزاهی ال مثلا زیرا که این حبذا جاری مجرای مساله مشابه با مساله اینجا لزوم داره که من یه مقدمه براتون بگم تا اینکه این مطلب رو فهم. یک بار بنویسید زیدون زیدون که اصد فل جرعته زیدون که لعصد فل جرعته زید هفرند شیر است در جرعته زید میشه مشبه اسد میشه مشبهان به کاف میشه عدات تشبیه و فل جرعته میشه وچ شبه این ارگان تشبیه هست حالا دو تا رکن اصلی تشبیه عبارت از مشبه و مشبهانده اینا قابل حذف نیستن یعنی نمیشه از کلام به طور کل برن میتونه علما قدر و کل مذکور باشه یعنی اینکه نباشه به طور کل دو کلام نمیشه در تشبیه اما بچه شبه و عدات تشبیه خیلی از اوقات چیه؟ حذف میشه اگر یکیش حذف بشه تشبیه ما یه پله قوی میشه اگر هر دوتاش ت... حسب بشه تشبیه ما بقیقی میشه مثلا زیدون از اون زید شیر است. نگفتم مثل شیر, شیر نگفتم در جرعت نگفتم شیر هست یعنی در جمعی جو. یعنی یه مقدار توقع جمعی بوجود یعنی از خود عملش کرده و انگار دوتا شدن چی؟ به این میگن تشبیه بلید که ادات تشبیه و وچه شبه چی شده؟ حسب این قوی تر شد از این قوی تر جاییه که ما لفظ مشبه رو حذف کنیم و مشبه به رو این جاییو بشونیم و یه قرینم تو کلام بذاریم الان اینجا که و اصدون هستش خود وجود این دوتا یه مقدار تقایر رو نشون میده که زید شیره خودشیر نیست و واقعا بگم من شیر دیدم اونو میسته آره یک نوع از که ما اینجا لازم داریم مثلا من برگردم بعد از تشویق بلیغ اینطور بگم بگم رعی تو اصدن رعی یحمل و سلاح رعی تو عصدن. یحمل و سلاح یعنی دیدم شیری رو که داشت چیکار میکرد سلاح میکرد رعی تو فهل و فاهی من گفتم اصلا من رب شجاع دیدم زید دیدم چی دیدم؟ شیر دیدم اما یه یحمل و سلاح کذاشتم که فیل و بایرمه جمله جمعه صفت شده از خصوصیات رجل شجاعه این به ما نشون میده که حسد, حسد حقیقی نیست به این میگن استعاره یعنی آریه گرفتن لفظ مشبهون به رو و به کار بردن اون برای مشبه با وجود این استعاره در مفرد بود این استعاره در چی بود؟ در بگید مفرد بود حالا یک موقع هم از است استعاره در جمله و هیئت واقع میشه شن موقعیت مثلا خدای حالا میگه مثل هم که مثل همار یحمه رو اسفار اینم تشبیهه اما مفرد به مفرد تشبیه نشده زید به اسد. بلکه یک هیئت که مسل شن موقعیت تشبیه شده به یه حیعت میگه هیئت یهودی ها که ما کتاب نافع بهشون دادیم زحمت هم کشیدن این کتاب نافع رو گرفتن اما باز از این که نافع هیچ ای به جز تعب و خستگی ندارن حیعت اینها مثل هیئت اولاقی که کتابی بردوش داره زحمم رو میکشه ولی بردو در به جز فستگی. خدای خدایتالا قصد نداره که مثلا جز به جز تشبیه کنه بگه یهودی خرس یا بگه کتاب روی خر مانند کتاب ماست ازم مفرد به مفرد مورد نظر نیست درنابش میگن تشبیه تمسیری تشبیه چی چی؟ تمسیری یعنی تشبیه عدی حیعت به انا مسئله هم چه؟ عداد تشبیل شده میشه چی؟ بیا حالا همین تشبیلی رو تبدیل به حسن کنیم نگاه کنیم نفری اومده پیش ما درس خونده از اینکه در نزد ما درس خونده و ما خیلی به اون لطف داشتیم و حسابی برای زحمت کشیم بعد در رفته بیرون احانتی هم کرده و بعد و بیرای هم گفت. بر برگردم اینطور بگم بگم که حیعت تو در و وفایی اینو چه تشبیه چی تمثیلی ولی خیلی از اوقات اون مشبه و اصلا ذکرش نمیکنن مشبعو به وفاق ذکر میکنن اشاره تمثیلی میشه مثلا من یه همچین شخصی رو میبینم برمیگردم میگم نمک رو خوردی مکتون رو در واقع مشبعو ذکر کردم کلام دومو ذکر کردم اون کلام اولو خودش میفهمه که هیئت تو که بی کردی اهانت کردی مانند هیئته ولی اون به من اعتراض میکرد مگم من که نمک نخوردم نمک دون نشکستم چی میگی؟ چرا این اعتراض رو نمیکنه؟ چون استعاره و تشبیه رو ازش فهمیده در استعاره تمثیلی معمولا جزء دوش چیه؟ مثله معمولا جزء دوش بگیر زربال مسلمه ترمین نمک رو خورد رو شکست. در استعاره گوش گوش در استعار لفظ مستعار رو لفظ آریه گرفته رو زرگی توش تغییر بگیر نمیدن این خودش رو به کار میبرن یعنی دیگه نمک رو تبدیل بشن نمیکنن کنن نمکتان کردن تبدیل نمیکنن کنن ها همون این خودش رو به کار میبرن این خودش رو اگر یک نفری کار خیلی میکنه بعد آخرش خراب میکنه میگن گاب نهمنشیر شدید اصلا نداشتن اون رو تشویق به گاوب کنن و کاری رو که کرده به شیر تشمی کنن و اون گاب لغت زد و ریخت. اون خودش هیئات از این میفهمه و تمثیل از این میفهمه و استعاره جناس هم میکنه. ازش میفهمه تو که کاری کردی بسیار و بعد آخرش جدی زدی و کار نیک رو خراب کردی اون گاوی میباش نهم من شیر میده و بعد هم لغت میزنه عمر رو. کل این رو از اون دیگه اون گاو دیره به گوسه، شیرش هم در دیده بگن اینه لفظ مستعاره. هر که جاری مجرای مثل باشه بهش میگن چی اینه خود زد اینه خودشو بکنه میگه حضا جاری مجرای مثل چیه جای چی؟ چرا نگفتن این خود مساله؟ مثل اونیه که مورد حقیقت یک روزی اولین بار زیدی رده از خانه هم نمک هست و همراه با غذا خورده هم نرکتان رو داشته زیر پاشو شده اون شخص برای اولین بار گفت چی؟ نمک خوردی و نمک رو شکستی اینجا چیه؟ اینجا حقیقته اون شخص هم نمک خورده بود و هم نمک شکسته بود و چیزی رو هم به چیزی تشبیه بگید نگر از اول به اون آقا باقا نمک خوردی نمک دون حقیقت بود زربال مثال در این مورد چیه؟ حقیقته اما در بقیه موارد که به کار میره چیه؟ مجاز چون نمک و نمک که در کار نیست استاد و شاگردی و اهانت ما میگیم نمک رو خوردی نمک رو شکستیم مثل در یک مورد حقیقته در بقیه مواردی که به کار میره به خاطر مشابهت میشه چی؟ مجازه و استعاره اما جا جای مثل در همه موارد حقیقته در همه موارد حقیقته در همه موارد دقیق و فقط مثل مسل سر زبان‌های حجی هم همه به کارش می‌برند همین دلیلش میگن جاری مجرای مسأله برگردید تو بحث مفعولتون اصلا جزء دادم روید ان تهو خیرن لکم بحث که این چی جاری مجرای مساله ان تهو ان تسلیس وقص دو خیرن لکم گفت جاری مجرای مساله تو بحث مفعولم به برگردید سر جاش میگه فهوه یوزاهی المسله الجاریفی کلامه هم من قوله میگه یه ضرب المسل مثال بزن ضرب المسل مثال زدیم نوک رو خوردی نمک رو شکستی این ضرب فسیه فسه زیعت انلبنه. هم مشابه همون نوک رو خوردی نمکدون رو شکستی پایین حکایتی رو نقل میکنه من فقط میخوانم دیگه توضیح نمیدم میگه فعل اصله در اصل اولیهش این رو آقای به زنش گفته که از اون بوده فصل خطابون لِ امرعتن کانت تحت جلن کانت تحت جلن یعنی زن من بود قنیین مرد قنی بود اما پیر قنیین فکرهت هلکه بر سنی فکرهت هلکه بر سنی فتلا فتزوجه ها رجلون شابون جوان فقیر مادم بی چیز و کانت طلاق و فی فصل سیف اما طلاق در تابستان بود که تابستان خلاصه اگه آدم بیا بونن بره چیزی گیرش میاد بخوره فی فصل سیف فبه اصد فشتا زمین که شد فبه اصد فشتا الازو هل اول فستاد پیش زود اولش دوجه اولش اون زود که چی؟ تطلب و منو دبنا از او شست فقالالها یاذل تو تو وابسته نج تلاقی چیز دیگه کرد این رو ما در مورد کسی دیگه مشابه این هم انجام داده به کار اگر این آقا مردم باز ما برمیگردیم چی فسیف زیعت الله وانا بس رو دیگه نمیایین در هر دگه به کار بردیم بگیم چی فسیف زیعت الله وانا عموزو و بازار زاشو تغییر نمیدیم فسره هم تغییر داده نمیشه چون استاره است لفظ مشبوهه یعنی تو که در به ما بیادبی کردی حالا زمست سراغ ما از ما پول میخوای مانند اون زنی هستی که در آبستان طلاق و زمستان دنباله ما همون زکه میگیم و برای مزکر و تصمیه ور جمع فسیف زیعت اللبنه وسر تا للجمع برای همه و حاضر زیعت